فریب دشمن مخور و قرور مدا مخر که این دام زرق نهاده است و آن دامن تمق گشاده. احمق را ستایش خوش آید چون لاشه که در کعبش دمی به نماید. علا تا نشنوی مده سخنگوی. کندک اندک مای نفعی از تو دارد، که گر روزی مرادش بر نیاری، دو چندان قیوبت بر شماره.